بیا که رایت منصور پادشاه رسید نوید فتح و بشارت به مهر رسید بیا که رایت منصور پادشاه رسید نوید فتح و به مهر و ماه رسید جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخ کمال عقل به فریاد داد خا رسید سپر دور خوشکنون کند که ماه آمد جهان به کام دلکنون رسد که شاه رسید سپر دور خوشکنون کند که ماه آمد جهان به کام دلکنون رسد که شاه رسی آن طریق این زمان شوندی من قوافل دل و دانش که مرد راه رسی عزیز مصر به رقم برادران غیور ز قعر چاخ بر به اوج ماه رسید کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید سباب بگو که چها بر سرم در این قم عشق ز آتش دل سوزان و دود آه رسید ز شوق روی تو شاه ها بدین اسیر فراق همان رسید که داتش به برگ کاه رسید مرو به خواف که حافظ به بارگاه قبول ز ورد نیم شب و درست صوبگاه رسید